درویش ضعیف حال را در خشکی تنگ سال مپرس که چونی، الا به شرط آن که مرهم ریشش به و معلومی پیشش. خری که بینی و باری به گل در افتاده، به دل برو شفقت کن، ولی مرو به سرش کنون که رفتی و پرسیدیش که چون افتاد، میان ببند و چون مردان بگیر دم به خرش.